میدان سرایت به توی به دیشان سفارید یک بار دوید سواران اینانها کشیدن نرم نکردن لذان خود کسی هست یکی گوی ترکان بیانداختن یکی گوی ترکان, بیان ترکان بیان آتش همی تاختن سفه بچ آواز ترکان دوید به دانه کان چه بود چون این گفت پس ترکان سفاق که است با من یکی نیتا که او را بگیتی کسی نیست شد. به چی رو کمان چون بشاید بسیار؟ این اولا اونجا ما اونجا بعد جایی چیز کرده بودیم. بعد جایی قطع کرده اون حرفایی که خوندالان دنباله اون چیز. میگه که ایرونی خیلی که دی بازی میکردن و نزیک و رو شکست بدن و این خوب نبود برای این این بازی تشریفاتی بود شاب بود میگه که به, به زبان پهلوی به اینا گفت اینکه میدون بازی یا میدون جنگه این نیخده کتاویه بعدم این دنبال حرف سیاه وشی چون میدان سرایت به تابید روی میدان سالم تانید گیم تازه که میخوام بازی کنند یا هافتایمه یا یه چیزی نظیر این یا اگر به پایان میدان رسیدید به هر حال در یه فرصت معینیم یکیه یه خوده دوتون ورگردونین و پلاسه کتابیان و گوی رو به اونا رسپورین بعد اینجا که خون تو میدان سرایل به تابید بدیشان به دیشان سپارید یک گوی دنبال اون حرف صغاران انها کشیدن نرب نکردن نظام پس کسی اصف گرم اصف رو برای اینکه بتازن باید اینان میشه به کلی را را وقتی میکشن دهن دهن این دهنه ای دهنی میزنه میگه نرم, می نرم اینان رو کشیده یعنی آهسته کردن اصف ولش گلش نکردم رو با آهسته ای کشیدن و کسی اصف رو گرم نکرد یعنی نتازون یکی گوی ترکان بی انداختن به کردار آتش هم میتونیسی که از هم مثلا بازی که شروع میشه شد مثلا گول که میزنن دوباره از تشنید همچی وزی گوی انداختن رو شروع کردن به سرعت دویدن دنبالش وقتی که افراسیاب آواز ترکان رو شنید فهمید که آواش پهلوی به ایرانی چی گفته؟ سپهوت رو آواز ترکان شنود به دانسکان پهلوانی چه بود؟ چون پس شاه توران سپاه که گفته است با اوان یکی نیتا که او را به گیتی کسی نیست گفت به تیرو کمان تون گشاید دو صفت دو صفت صفت یعنی شانه گفتم این کمان یکی از نشانه های پهلوانی این بوده است که کمانشون خیلی محکم بوده برای اینکه کمون چیز کشمدنی که نداره که اون نخش ذه. زه بروده ای بسن. اصلا کش نمی یعنی هر چقدر هم زور بیاری حتی یه میلیمتر هم کش نمی اون چوبه که وقتی می کشن اون چوب باید خم بشه بعد دستی که از تیر برمیدارن یعنی کمون رو برمیتون چوب برمیدارن سر جاش تیرو رو پرتاب می و کمانی که محکم باشه یعنی اون قوسش خیلی کشیدنش که تا سر بکشن بکشن تا تا بیخ بومش باید بکشن دست اونجا یکی بکشن اینجا این خیلی هرچه حد پهلوان تر بودن این کمونشون صفتر و نشان یکی از نشانه های این این بود که میامد یه کسی گفت اون کمون منه اگه میتونین بکشید و اینجا میگه که افراسیاب گفت که در تیر و در تیر کمان وقتی شانه هاش از هم باز میکنه هیچ کس همتا نیست. بعد سیاهوش کمانش در میره بود سیاهوش تو گفتار محترشنی زه ترکش کمان یکیان برکشید به کمان خواست تا بین یکی برگر آید که فرمان برد کمان را نگه کرد و پیره به ما بس این آخرین برگرامی بخان و دیوز تیخ بند دادمه که خانه به و برابر به ذهر بگوشید تا بر ذهارت کمان نیامد به ذهر خیره شد پت کمان. از اون شاه فستد به زاوین شر به مالی به مالی خانه, خانه کمان را بده به ذهر کرد خندان تونین گفت شا که این است کمانی چو باید یک مقاله نوشته آقایی در مجلیه ایران شناسی واجب ذه کردن کمان این ذه کتاست کمان رو بلش اینجوری میشه بعد این کمان رو بیارن جلو اینجوری تا این ذه رو بینزن بیشن اینگرن ذه کردن کمان اونجا عکسشو کشیده و پرتیبشو داده و شکلشو گذاشته که این کمان یه سرچی میذاشتن زیر زانونشو فرصت زور می آوردن بهش و اینو مینداختن مقاله خیلی خوبی است آقایی به نام جلیل اخوان زنجانی درباره کردن کمان و اینکه چه جوری بوده و تصویرای از توی این نقشای برجسته روی سنگ‌ها درآورده رو و خیلی خیلی مقاله جالبیه که اگه اون مقاله رو نخونین اینا رو من هر چقدر توضیح بدم که کمالو ذهن کرده چکر کار کرد. ولی اون چه اینجا دیده میشه امیدوارم اون مقاله رو بگیرید بخونید حتما در چیز هست در, در اینجا هست و احیانا یکی تون محبتی هم بکنید اصلا چیز کنین. اینو فوتوگرافی بگیرین و پخش کنیم اینستاگرام. نه یکی دو شماره قبله این سال چهارته که بیشتر از این نمیت خیلی ساده است. مقاله جلیل احوان زنجانی بدم. هر سال آخرش چیز بده. شماره چهارمش فهرست بده. و بنابراین حتی لازم نیست که شما از مجله ها رو ببینید. آخره آخر مثلا امثال رو می‌بینید، پرش چه نگاه می‌کنید. نبود مال سال قبل میتام میرسید. چیزی نیست. با فوتوکپی می‌کنید اون خیلی مقاله جالب هست. ولی اینجا باز یکی از یکی از خشتای کینه که گذاشته میشه همین که یواش که یواش هم تا ندرون اونا یعنی که کمان رو تو بده دیگه میده در میره میده کمان رو میده دست گرسی و از برادرش میگه اینه ذهب کن نمیده خیت میشه دیگه سرشکسته میشه با آدمی که حسود باشه فکر میکنه که اصلا این تو کارها همون برای این, این کنف کن. و بعد افراسیات میگیره خودش می این. کمان رو می‌کنه. میکنه خانه کامون هم من نمیدونم کجاشه ولی یه جایشه شاید اون اون اون چیزیش که قبضه بهش میان اونجوری که میگیرن که میکشن شاید اون گوشه های کمانو میگن خانه که زهو بهش میندازن من درست نمیدونم و هر جهت این این تعتیباته اینجا میگه تفصیل زه کردن کمانه کمان رانگه و خیره بهمان بس آخرین بر گرامی یعنی بر سیاوش بخوان به کرسیوز تیغدن زند آدمه که خانه به مالو برآور براور به نه نزدیک کن و به هر بکوشی تا بر ظهارت کمان نیامد آمد به ذهر خیره شد بدکمان یعنی بی خودی سوه زند پیده کرد از همینجا پایه به باید رفتن سر سیاوش کنید ولی اینکه از این به بعد که کرسیوز از بعدهایی مزایغه نمیکنه. بعد بعد میگه که افراسی خودش گرفت ببین از اون شاه بستد به زانونش است گفتم میزنن سرش زیر زانو اون مقاله رو باید حتما ببین به مالید خانه کمان را به دست به ذهر کرد خود ها خندان چنین گفت شاه که این کمانی چو باید براه مید کمون حسابی اینه بگو مرانید گاه جوانی کمان چنین بود و بهتوران و ایران کسین را به چند نیارت گرفتند به هنگام جنگ بر و یال و کر سیاوش جزین کمانی نخواهد بر این برگزین نشانه نهادند بر اسریارید سیاوش نکرد ایچ با کس ای. نشست از بر بازهایی چو دیو بیا ران و برآمد قرید یکی تیر زد میان نشان نهاده به دور چشم گردن کشان خدنگی دیگر با چارت هر از باد و بخشات بر نشانه دوباره به یک تاختن مقربل به گوز اندر انداختن اینان را بپیچید بر دست را بزد با در دیگر بران سوی که خواست کمان را به زهبر به بازور سکن بیامد برای بر شهریار بلند فرو دوامده شاخ و خار ها فرو آفرین زافریننده خانه بس باز اینجا تنصیباته که این الانم این عشایری ها و اینا از و سفنگ یه کاره اینجوری میکنن شیرین کاری بده فول و مینزه هوا فول نقره رو که خیلی تکاشم خوشی بوده میندا تا هوا با تیر تا مثلا یه دونه سگ که همیشه دایم بودهش کنار دیوار مینزه بعد در سواری قیقاج به قول خودشون از این برخم میشده تیر میدخوا از اون برخم میشده تیر میدخوا میرفته زیر از, از اونجا تیر میدخوا همه اینا رو به هدف میزنن سیاهش که چنین کارهای میکنن میگه هدف اونجا گذاشته بودن و سوار شد و افراسیاب میگه کمان منم جوانی همینجور بود اما حالا دیگه به حال دیگه نیست به توران ایران کسی نمیتونه اینو و سیاه روز این کمانی نمیخواد بعد نشانه نهادن بر احفریس یعنی میدان از دوان ها. و مکیس اماله هست. چیزش هست مکاس مکاس یعنی با کسی تونه زدن عربیه مثل سطلاح که شده سلی مکاس هم شده مکیس. این سیاوش دیگه شونه نزد که این بالاست، این پاینه، این هدف دور دنزیک هیچی نزد نشست از بره پای چو دیر، اینجا چو دیر یعنی خیلی سریع دیگه، است یه افشار ران رو بر آمد قریب، یکی تیر زد بر درست، از خط هدف دیرید که یک نقطه است زد تو اون نقطه، چیست؟ چیه فریاد یکی تیر زد میانشان نهاده به دو چشم کردن کشان برگشت یه تیر دیگه زد اون تیر خدنگی دیگه باره با چار پر بی از باد و بکشاف بر یکی دیگه هم انداخت خدنگ گفتم خدنگ رو بهتون یادتون هست؟ یکی میتونه بگه خدنگ چیه؟ خدنگ خدنگ خدنگ ولا موات من خرابه خیر قربان اسم درخت گفتم برش. درخت نیست که چوبش هم صلبه که هم محکم چون چوبای صلب باشه محکم نیست اگه مح... سنگیم اگه محکم باشه سنگینه توب اینکه سباک باشه و محکم باشه که بتونه تیر بره توب خده بعد از او هم تیر میسازن، هم زین میسازن اونم گفتم این زین روش چرمیه دیدین، توش هم چرمیه یعنی اون که رو پشت عصب میزنن چرمه، اون هم که سوار میشه، سوارکار روش، اونم چرم اما وسط این دوتا یه زیرسازی داره چوبی که این زیر سرش اینقدر بوده این زیرش یه, یه چیزی به این ترکیب میتازن این تو جای پشت عصفه این, این تو روی اینو چرم می این زیرم چرم می این چوب پیدا نیست این چوبه هم باید خیلی محکم باشه برای اینکه زعب خاره دیگه اون سوارکار فقط بزنش که نیست خیلی تاق میکنه و زود میاره و جنگ میکنه خیلی نیرو می اینه که هم باید پرزور باشه این چوب هم سنگین نباشه که اون عذیت نکنه از اونم که بهش میگن زین خدنگ امیدوارم که این دقیق باشه وقتی ادم جوزوشو یاد داشت کنه برزر گوشه تاقچه هفتهی بعد برداره بیاره هم میشه دیگه یعنی میکنی چی بشه دیگر باره با چار فرق بینداخت نشانه دوباره به یک تاختن مغربل به بود مغربل یعنی مثل قربال شده قربال علک دیگه یعنی سوراخ سوراخ هم راست پیچید دوباره همون همچه که خواست درد بعض این که شیرین کاریافی کرد کمان را به زهبر بازو پکند بیا آمد بر شهری ها بلند فرود آمد و از اسب و شاه بر پای بر و رو آخرین زافریننده خواست لفت برزن جایگه سوی خواه بلند برفتند شادان دل و عرجمن نشستن دخان و میارافتن. کسی گوست از بن بمشاستن نهی چند پردند و گشتند شاد به نام سیاهوش گرفتند یاد سخانبر یکی خلعت هاراست شاد از از خوسته ها و موسه هم از جامعه دستو هم نابرید کند در جهان پیش از آن کس مرید نابرید یعنی قواره پاچه نابرید من ز دیبا و از بدرهای سرام زیاغوت و پیروزه و پیش و پرستار چندی، چندی خلام، یکی پرز یاهوی ترخشنده جام ظاهرن نیست که پرستار، خدمتگار زن بوده ظاهرا میگه چند تا پرستار، چند تا خلام نیست که پرستار، زنیست که خدمت میکنه خلام پسره به بفرگوز تا خاسته پشمرند، همه سوی کاخ سیاه برند. دهاتش به تومان زمین پیش بود و مهربانی میزبانی و مهربانی و پیش بود. به خیسان چنین گفت او را همه شما خوب باشید جمله رمه بدان شاف داده چنین گفت شا که یک روز با من به گاه که آیی که دل شاد و خرم کنیم. روان را بنقشه بیفهم کنیم. بدو هر کس که را یابد بدان سو که دل راهنمای دفتن نشستن و باز تشریفات میخوردن و اینا رو میگه که اگر کسی دنبال مثلا این باشه که هزار سال پیش جو صحفه میداختن مجلس قضا چی بوده مجلس شراب بوده تشریفاتش چجوری بوده اینا رو باز جانمه رو بخونه جاهایی که هر چیزی رو که شما بخواین سرچشمه اولیش تونیش آخون تمام جزئیات زندگی تشریفاتش توی این شان صبح را چجوری میداختم چجوری توست میدادم به قول حالایی یا برای مجلس میخوردم همه چی هست انتها باید دادم کنه که این همجری بخونه بره قصه حسین کرد قایدی نداره دیگه بعد ببینه چی میخواد دنبال همون باشه دقت بکنه و همونهایی بیرون بکشه یادداشت کنه درست بشه خب نشستن دو خانو میاراستن کسی کن بود؟ یعنی کسانی رو سر صحبه نشوندن که شایست داشتن همه که سر صحبه افراسی ها و شاهصادی ایران نمیتونن بیشن که طبیلیست الان تو مهمونی های رسمی همینطوره جای هر کسی که تحیم میکنن تازه ادهی هستن که میتونن در حضور شاه یا در حضور رایز جمهور شام بخورن همه که کنه. اصلا همینطوره بعد هم میخوردند و شاه هم اونجا خیلعت درست کرد از سر تا خواب جواهر پلان که داد جامعه نابورید از پارچه های که هیش ندیده بود خیلی عالی اینا رو پرستاد و میگه که زهر کش به توران زمین خیش بود برا مهربانی بر او پیش بود یعنی افراسی ها بسیاروش بیش از هر کس دیگه ای در توران مهربانی می‌کرد همینم یه خرد آتش حسد رو در دل آدمای بی‌ذرفیت روشن می‌کنه دیگه که چرا این این از اونجا اومده حالو دارن اینجور عزت بهش می‌زنن و حرمتش می‌زنن ما رو خار می‌کنن بعد بعدم هم گفت همتون به خیشان چنین گفت کو را همه شما خیل باشید یعنی مثل گله باشی، اون چوپان شما گله باشی. یعنی معنیش این است که همه تو از او اطاعت بگید. بدان بعدم گفت گه روز بیا. اگه میاید بریم یه روز چنگ. اون چیز باشید. شکاری. هر روز که بیدارید. میرن به شکاری. بگوستم. برفتن روزی به نخچیرگاه. همین رفت با یوز و باباز شاه سپاهی سپاهی زهر بونه با او برفت. از ایران و سوران به نخچیر تف. یاوش به دشت اندرون اون چو بعد از میان سفه بردمید سواد شد اینان و گران شد رکید همی تاختن در فراز و نشید یکی را به شمشیر زد به دونید. دو دستش ترازو شد و گوزید به یک جوز یک سو گرانتر نبود نظارک شدن دشگر و شاهد رو ببختند یک سر همه انجامن که این از سرخباز و شمشید زند. راواز گفتن یک بار دگر یک بادگر یک بادگر یک بادگر که ما را بد آمد از ایران بسند بلازه میکنید؟ حسودی شد یکی ایران پدر ما در در دشمنی که زدن ما را کشتن پدر ما در دوستی هم که حالا ما را دارن که نکنید بد سر سروران اندر آمد بند سزد گرد سازین با شاق به غار و به و به هامون به به شمشیر و تیر و به نیزه باب به هر جایگفر یکی توده کرد سپه راز نخچیر آفروده کرد بازان جایگفر سوی ایوان شاه همیش شاده برگرفتن راه بسیار میگه شکار دیمون. بور میگه دید بور گفتم حیبون بسیار بسیار سریعیه به طوری که بجل و آدم برد میشه، گاهی از بس سرعت داره، نیمیشه البته نمیتونه یه ساعت این کلو به ولی وقتی خطر احساس کنه، به سرعتی میری که شان نیمیمیشه همه سریعه بزرگ کردین یعنی کسی گور خر بزنه مثل یعنی که همه شکار دیگر زده یه چی هم اضافه ده. بعد یکی از نشانه های پهلوانی قهرمانان حماسه. که برای خیلی کسان گفتن اینا درست گوشات رو نبای کن اینا همین سوال بشه این است که اینا وقتی شمشیر میزدنن و دشمنشون رو یا وقتی دوپاره میکردن این دوپارهش یه اندازه واسه یه جزء ها و موجزات مرتضی علی مولای محتقیان آمینو گفتن. بعدان حضرت میزد ساخت کله یارو از ات... مثلا دو, دو تا پاش 30 میاد بیرون. اینا میزد وزنه میاد بیرون. بعدا دو تا قره رو میذاشتن ترازو مون نمیزرد. که خدا تازه دو تا رو درست اونجوری نساخته ما دو تا بدن اون قرینه نیست. میدونین که اگه نصف عکس از ور میگیرم بعد نصف بکنن این نصف رو بردارن بذارن اینورا این نظر رو بذارن یه چلکتون میشه خود خدا این دو تفاره رو اینه هم درست نکردی. و ولی خب جز،, جز نشانه هایی که به پهلوانان همه میدن یکی هم است این این که چمشیرشون وقتی کار میکنه و قربانی رو دفاره میکنه دفارهش یک اندازه است و اینجا همینه میگه میگه سیاوش زد با شمشیر یک گوری رو دوریم کرد و دستش ترازو شد ترازو شدن یک معنیش که صاحب خیلی به کار برده درست مثلا زدن تیر به حضرت درست ولی اینجا میگه ترازو شد ترازو دستش ترازو شد و پول رو میخنم ترازو میکشتن برای اینکه کم نباشه دیگه گفتم که صحوم میزدن پولو را و یکای کم میزشتن و دوزی میکردن چون با دست میساختن میکشتن اینا رو بعد پولم گروم بوده دیگه تلا بوده، نغره بوده، گروم بوده اینه که خیلی دقیق هم میکشتیم میگه که سیاه دو دستش پس ترازو بود و اون گور مثل پول که اونجور زده بود دونست گرده بود به یک جوز یک سو گرانتر نبود یک جوز مزاره شدن لشکر و شاختود بگفتن یک سر همه انجامن که این نفس طرف را خوشم هم همونجا میگه که همه با هم پش پش کردن که از ایران به ما بد رسید بعد هم سیاوش اومد میگه رفت و همه جا و قار و کوه و خلان اینا هر جایی کروار شکار توده کرد و دیگه راحت کرد همه رو که دیگه سپاهی اینا دنبال شکار نره همه که همه،, همه رو خودش کرد به قار و به کوه و به هامون بتاخت به شمشیر و تیر و به نیزه به هر جا بر یکی توده کرد سپاه روز نخشیر آسوده سپه چه شاد و چه بودی دو رم به جز با نبودی به هم به جهنم و به کرسی و و خرکه بود به کس راز نک شاد و شادن نبود مگر با بودی روز و شب از اون بز و شادید و خنده بر این گونه یک سال تو داشتن قبل شادمانی به هم داشتن میگه که یعنی اونو از نظر عرف رسی به جهنم و به گرسی و به کسندگی رازشونه وا همش با او وقتش تلف بود با اوش بود وقتش خوش بود با سیاهوش بود سیاهوش هم که میدید چه گفته میشه خب اینا چیز میشه دیگه برای اون کسانی که اون طرف نشیسن سخت دیگه معلان حس میکنن مثلا این گلی که دوران حالا اینش اینو به یکی میدم یکی دیگه فکر میکنه که چرا به من نده این بشر این جوره دیگه واقعا قابل این مفهم نیست چه ورسته که شاه که همه مراهات ها به وسیله او داده میشه یا آدمی رو که اصلا مال اینجا نبوده بیاره و اینو به روی همه برکشه ناراحت کنندر و همینجورم میشه میگه یه سال به این ترتیب بودن به شب و روز و عفت و بودن به اون وقت یه روزی پیران با شهر میزه سیاهوش یکی روز و پیران به هم نشستند و گفتند هر بیش و کم به دو گفت پیران که این بوم بعد چنانی که باشد کسی برگذر بدین دین که بر تو شاه به نام تو خصفت دارم با چناندن که خورم بهارش توی نگارش توی قمگسارش توی بزرگی, بزرگی, بزرگی یا... شاه سر از بس هنرها رسیده به ما پدر پیستر شد تو برنادلی نگر سر تاج کی نکتری به ایران و توران تو این شهری ها زشاخان یکی پرکنه یادگار. به دل بر بوم و جایی بساز شاهان گیتی توی بینیاز نبینم تیبسته بسته خون کسی کجا داردیم؟ می کجا قنی کجا برادر نداری نه خواهر نه زن گلی گلی برکران چمن یکی زن نگف کن سزاوار خیش از ایران مبر درد و تیمار خیش پس از مرگ کابوس ایران را همان گنج و سخت تو راست پس پرده شهریار شهری آور جهان ز ماه هست با در نهان که گر ماهشان دیده بودی برا از ایشان نبرداشتی دیده ما زن در شبستان شهری بزن، که از ما و از باب با پروز بود و فرزند شاه که هم جاه دارند و هم تا پس پرده من چهارند خورد تو باید تو را بنده باید شما ولی کن تو را انتظاوارت کرد انتظاوار که از دامن شاه جویی گوهر فریگیت مهتر ز خوبان اون نبینی به گیتی کنان روی اومد به بالا ز سر به سخی برتر است صحیح. صحیح ز مشک سیخ بر سرش است هنرها و دانش از اندازه بیش خرد را پرستار دارد به پیش از افراسی ور برد خواهی رواست چون او گفت به کشمی رو کابل کجاست چون ماه شود ماه پرمایه تو درفشان شود فر و عربند تو چون فرماندهی من بگویم بدوی بجویم بدین نز... نزده او آبه او بسیار سیاه باشه که روز پیران به هم یعنی با هم اشته بودن حط میزدن بخشنه نه چیزی نیست ولی بعد بهش میگه که بیت دوبان بدم او گفت بیران که از این بوم و که باشد کسی برگذر میگه تو اینجا مثل کسی که میخواد ساکن باشه نیستی مثل نوساخر اینجا هست مثل آدمی که گذر میخواد بکنه تو اینجا هست حالا که ایران هست و تاج ایران هم مال توه و پدرت هم پیره تو جوونی و فکر ایران نکن، قصه ایران نخور. خوربز پدر میره، پم میری و تا مینشینی الان اینجا چون کسی نداری مثل یک شاخ گل میمونی که در کنار چمن رویده باشه نه خوهری، نه زنی، نه پدری، نه کسی اینجا یک کسی رو پیدا کن که به تو خیلی مهر داشته بشه یعنی زن بعد میگه که افراسی سه تو دختر داره همچین هم کنه گرسی چهار تا دختر داره همچین هم همچون هم خود من چهار تا دختر دارم هر کدومشو بخوای بنده تو هستن پرستنده تو هستن با کمال هر کدوم بخوای بعد میگه که ارسی هم اینا هم از اجاد فریدون پرواز پروز دارن یعنی نصب درست دارن و از این حرفا بعد میگه که ولی من صلاح میدونم که تو فریگیست دختر بزرگ افراسی بود این خانم اسمش دوش آنها ماهای قبلی همه فرنگیس بوده ای یایتون رو شایلنم اسم فرنگیس بسید ولی تو این چاپ معتبر دکتر خالقی فریگیسه البته ما الان دیگه نمیتونیم انقدر اسم فرنگیس سر زبونه است که نمیتونیم برگردیم بذاریم فریگیس این تموم شده اما سر کلاس ادب باید اینه بدونیم من گفتم به اسفندی هارم قایدتا نسیم شوید بشه اسفندات یعنی مقدس زاده شده یا حداقل اسفند یاد حل شده اسفند یاد خیلی نشد شده اینا من یه فریگیس از همه بهتره چنین چنانه به بالا به بالا ذ سرسوی برتره در مشک سیاه خانم ها میبینید که همه یک جا در ادب فارسی موی روشن نیست زیبایی یکی از شرط های مهمش این بوده که موی سیاه یعنی پیداست که نجات، اون روزگار، این بوده و اولین جایی که چشم آبی اینم اینا من, من دیدم، درصیر منه تو سایب سایب میگه دل خراب مرا، جور آسمان کم بود که چشم شوخ تو ظالم هم آسمان گون شد ولی کمه، همه بیشتر چشم ها سیاه بوده و موها سیاه و زیبایی شرقی و این ترکیب توصیب شده و چه که سیاه و سا شرسن داره دانش داره اگه او رو بخوای از افراسیاب خوب خوبه زیبایی بوتی مثل او در کشمی رو کابول نیست و اگر او هم پیوسته به شما تو خیلی خوب میشه اگه اجازه میدی، خلاسه من به افراسی بگم، یعنی از طرف تو برن خواستگاری برای اینکه رسم این همیشه بوده هست که معمولا خود شخص مستقیم خواستگاری نمیکنه از یه دختری اگه داشته باشی پدر و مادر و خواهر و برادر رو، اینا رو میفرسته اگر نه یه مرادی، مرشدی، پیری، بزرگتری که آدمی به این تحتیم میفرسته و خواستگاری میکنه میگه اگرم اجازه میدید من برم و بگیر سیاهوش به پیران نگاه کرد و گفت که فرمان یزدان نشاید نخواست اگر آسمانی چنین است رای من را با از گنه نیست ها. اگر من به ایران نخواهم رسید نخواهم همی روی کابوزید چو دستان که پروردگار من است تهمتن که روشن روان من است چو بحرام و چو زنگی شاوران جدی نامداران و گلناوران چون از روی ایشان بباید برید به توران همی خانه باید که پدر باش و این کس, کس خدایی بساز مگو این سخان پیش کس دوز براید باشد مرا نیت خواه همانا دهد رهد و پیوند یا به هدف پیوند شاه یعنی بخت من اگه اون رو که تخوندیم یعنی شاه موافقت میکنه با این عروسی اگه بخونیم به پیوند شاه یعنی اگر بخت من مساعد باشه و مناسب باشه راه میده که من بتونم با شاه پیوستی بگیریم هر دوش دورست بعد همین گفت و مشکان پر از آب زرد همین برزدی هر زمان بادی سر به دو گفت پیران که با روزگار نسازد خرد یافده کار دار نیابی که در گردان سپر که دوی از پرخواش و آرام و مید. به ایران اگر دوستان داشتی به یزدان سپردی که گفت داشتی نشست و نشان از ایدر است تو را تخت ایران به دستندر است به گفت اینو برخاف از پیش او تا گاف گشت از کم و بیش او پر چون بعدش. مطلب دیگری اینجا زیابا شما زیاده، فیلش یاده هندسون کنیم پیران میگه که اگر قرار اینتون اینجا بمونم اگه قرار این روی کابوس رو نبینم اگه قرار اینکه روزنم رو نبینم چه و چه و اینجا موندگار باشم خب تو به هم باش این کار رو خدا رو گفتن کد و کده و به تفصیل گفتم و خونه ها هنوز هم در ایران تو دهات یه خونه باده توی یه دون اتاق زنگیر زن سوارو هیش تا بچه همه توی اتاق فقط وقتی پسره خواست زن بگیره یا دختره خواست سوار کنه که دیگه نمیشه که سوارشو یا اون پسر پسره زنش هم برداره بیاره پلو باباش وید یه اتاق دیگه بهش بدن اینه میگن کت خدایی یعنی صاحب یه اتاق میشه خدا خدا یعنی صاحب و کت خدا یعنی صاحب اون اتاق خانوم میشه کت بانو یعنی بانوی اون اتاق تا بعد بچه بیان باز اینم پر بشه ما به همین تحصیل ادام بگیم کنم اینه که یه باره کت خدایی رو درست کن چنان کت خدا رو به ده به جای ده خدا میگن کت خدا کت خدا یعنی کت خدایی یعنی دامادی عروسی کن کت خدای شد پلانکست یعنی زنگی به در باشو این کت خدایی بساز اما اینو پنهان بگو و اگر وقت من مساعد باشه شاهم محافظت میکن و خیلی متاثر بوده وقتی این حال میسه که میگه اگر قسمت اینی من توی توران ماندنی بشم و با همه با همه این محبت که یعنی نوش میکردن دلش خوش نبوده که حافظ میگه غریب را دل سرگشته با وطن باشید الان من زنگ زدم به تیرون همین قبل از اینکه که زن من بختم اونجا پلوی دخترم و اینا و بعد زنگ دادم حرف سوزم فلان این صحبتی ها بعد بچه ها نباهای من و دختر من اینام اینا ها میگذارم تو چرا نایمدی بابا ما دل اون تنگ شده این هست وجود داره متاسفانه یا خوشبختانه نمیدن هر چقدر این بشه باشه آدم احساس میکنه که مال اونزاست با سیاه باشم همین بیگه بود عشقش در آمده بود و اینا با پیران گفت که کاری با چرخ و بروزگار نمیشه کرد جنگ با گرزان سفه نمیشه کرد با سرنوشت پنجن نمیشه درفت کرد و تو هم نراحت نباشت تازو تخت ایران و هر حال مال توست قیلن همینجا باش و روحب شد بگو به گفتین و از پیش او چاگاه چا گشت از کم و او به شادی بشد تا به درگاه شاه خنود آمد و برگشادند را همی بود بعد پیش او یک زمان به دو گفت سالار نیکی گمان که چندین چه باشی به پیشم به پای چه خواهی زگیتی چه آمد رای سپاه من و گنج من پیش توست مرا سوزمندی به بیش, بیش بی کم بیشه تو کسی به زندان و بند من است بشاده انشتر دلگزند من است زه خشم و زه بند من آزاد گشت زه بخش تو پیکار من باد کرد زه بسیار و اندک چه خواهید زه خواهد زه خوزه مخروزه تخت و خلاه خرد من چنین داد باد کستون مبادا جهانی میاد مرا خاسته هست و گنج و سپاق به وقت تو هم تیخ و هم تاج و باق زنن سیابوش پیامی براد رسانم به گوش سپاقبت فراز مرا گفت با شاه توران بگوی که من شاد دل گشتم و ناوجود به پروردیم چون پدر بر کنار همه شادی آورد وقت تو بار کنون همچنین که خدایی تو ساز به نیک و بد از تو نیم بینی پس بسه پرده تو یکی دختر است که تخت مرا در خورست فریگیست خاند همین مادرش شبم هم شادگر باش من در خورش پرنگیشه شد جانم را سیا چون این گفت با زیده کرده من راندم پیش از این داستان نبودی بران گفت هم در این چیزی نداریم اینجا فقط مطلبی که شاید شما بهش متوجه نشین و باید بگم توضیح نداریم این است که بازی که از رسمهایی که وجود داشته. پیران میاد جلو صحب با این باعث دادن نمیدید این باعث دادن نشون اینه که من عرض دارم بعد شاهد که میگه بابا تو که همه اختیارات دست توه هر کسی رو آزاد کنی، هر کسی رو حبس کنی تخت، گلاف، پول، زندگی، همه چی که دست توه چی میخوای؟ هر چی میخوای یعنی بعد اگر کسی کار داشت با یا با بزرگتر راست اون بوده که بلندش وایس خودش شروع نمی به اینکه که قربان دست وقتی رو خواهد وقتی وایسات بعد شاه بش میگه که خب چی؟ همجوری که الان سر کلاس ادب کلاس اینه که شاگرد اول اجازه میگیره اجازه برای اینه نبرن که حالا اون آقا بزرگتر اینا من این مطلبی دارم میگم درشته فکرم پاره بشه بعد نمیتونه یادم میره وقتی بچه راست کلام میکنه یا همون وقت میگم خیلی خوب بگو یا میگم صبر کن که من حرفم تموم کنم بعد بگی اونم همینطور این ادب چیز این بوده که بعد بلند میگه که فشادی به شدم تا به درگاه شاه فرود آمد و برق راه راواز کردن که بیاد. بعد همین بود. بعد پیش او یک زمان. این باید. به دو سالار سالا نیکی گمان که چندین چه باشی به پیشم به خود چه نمشینی؟ چه خایزگیتی؟ چه رای؟ بعد هم همه که گفتم. بعد میگه. میگه فیغام مهرمانهی دارم و اینو و و اینه. و اینه, و اینه. هفراسی بر سر همون حرف اولیشه که چون بچه شیر نرپروری چون دندان کند تیز کیفروری که, که دفعه پیش کندیم این تو زینش هم دور هست و باز میگه که ها این پسر کابوسه در حال قیل خوبه ولی دشمن ماست حریف ماست من دوگذرمو بدم اینا که هم همطورم میشه از بدن همین دختر کسی میاد بیرون که افراسیابو میگیره و, و میخوشی برها میگه که پرندیشه شد جان افراسیاب چنین گفت با گیزه کرد تراب یعنی با نگهانی و ناراحتی که من راندم پیش از این داستان داستان این یعنی هم ذر همون که چون بچه شیر نرپروری که من رانده پیش از این داستان نبودی بران گفته هم داستان من قبلا مثال زدم تو با او موافقت نکردی آقای پیران و گفتی نفر قربان این چجو بکنی این حالا منم کردم حال دنبال شد. ساعت چنده من ساعتم ندارم پنجاپن پنجاپن با مرد بگیر بگو چونین گفت با من یکی خوشمند که جانش پنج. خرد بگو چنین گفت دا با من یکی کوشمند که جانش خرد بود و رایش بلند که ای دایی بچه شیرنن چه رنجی که همجان نیاری هم همجان نیاری مثل بکوشی یا او را کنی پر تو بیبر شوید چون بیاید ببرد نحسین که آیت نیروی جنگ سر پروراننده گیرد به چنگ و دیگر کجا پیش از این موبدان دیگر کجا؟ دیگر که و دیگر کجا پیش از این موبدان ردان و ستاره شمر بخردان سترلاف برداشتندی بر همین راندندی همه در به مرا با نویره شگفتی بسی نمایت همین کار کسی سر تخت, تا سر تخت و گند و سفاه مرا همان کشور و خوم مرا کنون باورم شد که او این بگو که گردون گردان چه دارد نها از این دو راده که برد که بارش بود زخ و بیر خشکه به کاغوس از صحب افراسی ها را تش بود کیس با موزا ندانم به توران گرایت بمین باگر سوی ایران کند خواه چه چرا برگمان زخ باید بشید دوم ما... ما سیرت نباید بودید yeah. یکی از این من چشم درست بزیده بزیده. بدارم شندان که ایدر بود مرا او به جای برادر بود دو گفت پیران که ای شه دلت را به بینکار قمگیل مداد کسی تزمیراد سیاوش بود خرد من رو بیدار و خاموش بود به گفت ستاره شمر من رو ایچ خرد گیر و کار سیاوش بس بسیر از این دو نجاده تیکی نامورد بیاید براورد به خوشید است به ایران و توران با بچه دو کشور بر آساید از کار داد به تقنه سریدون و از پیخ و باز خرویدن نباشد نجاد وگر زیدگر راست دارد به پرد نیفتایدش کن بودن دیگومان دودنید نه خاقت پردین نگه کن که این کار پردخ بود به انت... پیران تو نیم گفت پس شهیار که رای تو برد برد نیاید بکار به فرمان رای تو کردم سخان تو هرچت باید به خوبی بخانی کنی هر تو هرچت باید به خوبی بخانی کنی بهتا ایران و گردش نماز بسی آفری کرد و بریفشت با به نظر سیاه وش خرامی دیو به دو برد رو نشستن، شاهدان زیران شب به هم به باعته بشستن، که هم را آزدن باشم اینگه ارز که افراسی میگه که من گفتم یه دقیقه، حالا میگم بچه شیر رو تسید کنه اون که دور سیاد شد تو زور اول در بعد میگه موبدانم دیدن ستار شناسان استولاب برداشتن همین کسی رو دیدن بعد گفتن که یک نه از این دو شهری ها از این دو نژاده یک کسی میاد که تمام دنیا رو میگیره و از توران براه رست رست روست روست محفظ روستاست یعنی که روست یعنی روستا روستا روستایی که شنیدید دادید داد، بوم روست کلاه من اندازه گیرد نه خود یعنی اول نه طلاها کلاه من از رو تا چرا که اش باید درختی به است که بارش باید زهر و بیخش کبست کبست هنزل هنزل محروف به هندوانه ابو جهل یه چیزی میوه است مثل مثل هندونه ولی به قدری تلخه که اگر یه ذره آدم لب بزنه تا مدت‌های مدید تلخیش از ذهن آدم بیرون نمیره هر چی بخور آدم میخوره شیرینی میخوره نمیدونم ترش میخوره با تلخی هست خیلی تلخی بدی و معروفه این به تکتو چه هنزل چه،, چه کبست هر دو یک میگه منکر سعدی که ذوق عشق ندارد نیشکرش در دهان تل کبست میگه چرا آدم با دستش درخت بکاره که بارش انزل بشه. بعد میگه بی خود نباد چیزی هم من اینجا میگرش میدنم مثل برادرم مثل پسرم تا وقتی اینجاست پایدم بره چرا میخواه این کارو بکنی پیران عقده نده اما جوش که اون قبلن عقده میگه قربان اولا این سعاده داره ببینیم کسی که از خخم این باشه مثل خود این خیرتمند و دیدار و خاموش این آزار ازش نمیاد یک دفهم این که اگر اگر اینطور تقدیر شده باشه تقدیر رو که بشر که نمیتونه عوض بکنه بنابراین اگر نوشت اینه شما کارش نمیتونی بکنه تازه معلومی سرنوشت این باشیم یارو یه چیزی گفته گوش نکنین هر شما رو یه چیزی هم داریم در به نظرم حدیثه از قول پیغمبر اکرام که المونجمو که از منجم تو بکنیم اینه از که الان هوا شناستان هم که که هزا با میبینیم همه جا ارز کنم که اینه که میگه به گفت ستارش مر اصلا عقیده نه بود. باشه اولا دوبامی که اگه اینطور باشه سرنوشم داره تو چکران خود بکنیم کار نمتونی بکنیم میشه به لفترین افراسی هم. اگه راز و سفرینه تو کاری نمتونی بکنیم بعدان پیران دوتا میشه، این میکنه و میره میگه که معافعت کرده و خانم بگیره میشه دیگه بله نه، خود افراسیاب میگه جایی فردوسی نگفته الان اینجا افراسیاب میگه من یه روزی شما رو صدا کردم و این رو گفتم ستارشمن یعنی هیش به کردن خبر نمیده که روزی افراسی ها ستاره شما آورد و گفت و چیزی که چیزو ببینید نمید خواه ولی اینجا که میاد دختره افراسی ها و گاری میکنه بعد سیاوهش اینجا میگه که من اینطور به من گفتم و از این پیبن کسی پیدا میشه در میاره اینجوری گفتن و که پیرانم شد خوب دفتر حالا کردن اون تا کنشید را چرخ گردان به برآورد برسان برسانه زدین سپرد سفهدار پیران میان را ببست یکی باره تیز رو بنشد به کاخ سیاوخش ها دوز بسی آفرین خان بزقرده اون چون این روز که امروز بسی آزکار به نتمانی دختر شهیار. چه فرماندهی من سزاوار اون میان را ببندم به تیماع او سیاوخش را در پرازه پرا بود ز پیران روحانش پر از شهر بود. به دوبار شو هرچه خواهید بدان. تو دانی که بر تو مران نیست داست. یعنی من هیچ را از تو فنهان ندارم. بر تو مران نیست راد. یعنی میدونی تو میدونی که من هیچیز را از تو فنهان ندارم. ندارم. نه تو. تو بشید پیران سوی خانه رفت دلو به بستندران کار سر. در خانه جامعه ناوری نابری به گلشهر به صور پیران شهری کجا بود که با آنه پهلوان ستودستی بود جوشان زبان گلشهر زن پیران شهر یک کلید در قبورهای فاطچینا داد که زمینش برو بیاد با بییانجندارون آن چه بود نامدار کوزی وقت چینی هزار در برجت طبق ها و پیویده جان پر از نافه مشک و پردیده خام دو افتر پر از گوهر شاهوار دو یاره که تو و دو گوشوار در گستردنی ها شسروبار شست در ضربفت پوشیدنی, پوشیدنی ها سر از همه پیکرش سوخ کرده به ضربفت بر اون بافته چند گونه گوهر در سیمین و زردین شسروبار سی, سی طبق ها و از جامعه پاسی یکی تخت زرین و کرسی چهار، سه نعلین زرین زبرجت نگاه پرستنده سی صد زرین کلاه، به خیشان نزدیک صد میزها پرستار با جام زرین دهی تو گفتی به ایوان درون اون جایید همان صد طبق، مشک و صد زعفران، همی رفت با خاخران به زرین اماری یو اماری جو. بزرین اماری به دیبا جلل با خاسته خیل خیل بیاورد بانوز بخل نسال به بینار با پیشتن ده هزار به نظر فریدی چی چیز زبانشان پر از آخرین بود زمین را ببوسید گلشه را به خورشید را گشت ناییز رو بگاید همه شب شدن نزد شا یا راستن گاه او را به ما بسیار اینجا باز ناکه مهم، چیز خیلی خیلی جالب که وقت نزبیرشو در دورهای اسلامی هم می‌دینیم، این حدیه هاست. این حدیه‌ای که می‌گه جامع اینطور رو ضربست، اینطور رو شطور بار کرده، اینطور رو نمطلان، اینطور رو خلام، اینطور رو کنیس، اینطور طور از موش، طور از زعفران، این اون پا این جوزئیات که رو میده رو یه جا میگه که علی ابن عیسی برای حالون الرشید یه حدیه حاکم خراسان از خراسان فرستاده بود شهرش به حقیم نپسید این همین چه اون اصلا چیزیست که اونجا هزاران سال سال سال بعد چیز شده ولی درست همین تردی اینا جاهای خیلی دقیقه این مسائل هست و که گفتردنی چی گفتردنی یعنی فرش دیگه انوافع فرش نمیم چیز دونه دونه اینا رو باز اگه بخوام تحقیق بکنم مثلا در آداب روزون عروسی عروسی، نمیدونم، آدم های خیلی سطح بالا اینا خیلی مهمه. این یعنی مداره که خیلی خیلی باعرزش مهم یکی اینجا داره که همه پیکرش شطورا رو میگه شطورا، همه پیکرش سرخ کرده به زرد زرد که زرد معنی نیست، چی میگه؟ سرخ یاده به زر زرخ میس بوده؟ زرخ بوده، میس نه بوده میس که، صندوقه میاسه میس که چی میگه؟ سرخ سرخ نه، میگه. سرخ میگه یه خوب راهنمایی نمایی هم می کنم سرخ داریم و زره سفید به نیچون دار... در صورت زری زده میشه تیارش نقره زر که زره این زر نباشه که ارزش نداره اون که مثل توش بزنن سوق رنگتر میشه میشه زر صورت اون که نقره توش بزنن رنگش بازتر میشه میشه زر سفید زر صورت وای گفتی که بلد بگیدی؟ جلل مسققر جل جل عربیست، با دو تا لام جل اون پارچه بوده که مینداختن روی عصد روی پشت عصد و هم خیلی گرامباه ها بوده، فکر نکنید که حالا چون جلب به خونه پاره میگن میکنید چون وقت هم این خیلی سعدی میگه، خرر جل اطلاس به سوچت خرر و از جل از اطلاس میشاخن. فکر نکنید که چیزی یا دیبا جلل، دیبا پارچه عبری شمیه جلل یعنی جل پوچه و قاعده تصویر در فارسی در چیه برای تصویر خوچی کردن؟ می از براخر براخر. چیه اضافه می‌کنن؟ چیه اضافه می‌کنن؟ که که؟ دیگه تو بکنه بله، پس آوند تصویر اضافه می‌کنن یکیشم کافه، که کاف یه علاوه بر تصویر معنی ته تحقیر داره یعنی حالت توحین مثلی بگم مرد که مردی که یعنی مردک مردک یعنی مردی که قدرش زیاد، یعنی تحقیر هم هست. فقط، هست عدا تسکیر زیگم داریم مثل چه کتاقچه درینچه چه, درین چه. مثل موجه موجه یعنی موی کوتاه. موی چه نای جه یعنی نای کتا جه و چه و همون کافه تصدیر اینا هست در عربی حسن مخوام تصدیر کنیم قبل از حرف آخر یه دونگه میارید حرف اولش هم خوب او حسن میشه حسین حسین یعنی حسن جلیل جل میشه جلیل حسن میشه حسین چهار حرفی هم باشه همینطور میشه باز فرق جعفر میشه جوایفر. عبد میشه عباید عباید اولا عباید اولا گفتم دیبا، گفتم که پارچه عبیشانی کلوخته. درسته؟ دیروز متوجه این مطلب شد. اینکه یادتون باشه که آدم تا هفتاد سالگی و هفتاد یه سالگی و بازم باید بخونه، بازم باید یاد بگیره. اینو دیروز یاد گرسم که شما میگرم. یک کلماتی داریم دبیر به عنه یک نویسنده کتابت بسیم دبیر دبیرستان، دبستان اینا یک چیز داره یه ریشه باستانی داره در فارسی باستان یک کلمه هست دیپی دیپی یا گاهی خونده میشه لیپی یعنی ندشته این تو کتیبه 20 کتیبه داری شامد میگه ای کسی که این دیپی را بخوانید یعنی این کتی زد اگه این حفظش کردی، اگه مراقبت کردی، اگه مطلبش را به دیگران کردی، اهور آملتا یا روی کردی اگر این دیپی رو زدی، خراب کردی، فلان کردی، پلان کردی، اهریمند پدر, پدر, پدر دیپی دی ڈیپی یا لیپی، این نوشته است همین آمده در کلمه دبیر و دبستان و دبیرستان باقی مونده، نوشته یک کلمه داره این دیباچه چه که دیباچه وعنی موقع در دیباچه یعنی نوشته درست؟ درسته؟ حیلو این رو من احیانا گفت بودم سای خیلی سی حالا بفرمیم که این دیبا با اون دیبا چه؟ و این دیبا با اون نوشته چه افدیرشون؟ این هم از کس همونی شد چه پاچه عبریشنی؟ اول روی پاچه عبریشنی گروه مینوشتن و نقش میکشیدن یعنی که اصلا دیبا با نوشته است. و این در کلمه دیبا چه واقعی مونده یعنی نوشته ی بعدم در دوره های قدیم میگه که نامه رو رو حریر نوشتن روی دیبا نوشتن بعدها پوست درست می کنن پوست رو آماده می کنن برای نوشتن پوست بینوشتن روی چیزه ایتیه می نوشتن ولی اسم دیبا اون پرچه عبدیش مونده اما اصلا دیبا یعنی نوشته این مطلب رو بنده اینکه دیبا پرچه عبدیشن این با, با نوشتن چه رب داری و چیه و بنده خوندن خواب اینا رو بردن مثل فاریدیز روم هانی هاو تو داش پیرا ساختن سر مشک بر گل پیرا ساختن سر مشک بر گل پیرا ساختن چی سر, سر موی سیاهشو گل زدن ده یو ماکساریدیز چون ماه نو نزدیک آن تاج پادشاه نو به یک هفته مورغا و نمایی نهو نه سر یک نندر نخود زمین با گشت از کران تا کران به شادی و آواز رامشگران به کار روز عشق یک هفته می به پسپک یا راست از اصفان تازی و از روزتن همان جوشن و خیز و تی به دین و از پدرهای درم به سوشیدنی ها و از بیچ و کم وزین مرز تا پیش دریای چین همین نام بردند شهر و زمین به فرسنگ صد بود بالای او نشاید تیمون تخنای او نوشتند منشور برپرمیان همه پادشاهی به رسم کیان به خان سیاهوشت استاد شا یکی تخت زرین و زرین حالا باز این شاهانه که میگه یه اینجا طول تفصیل نمیده که جامع صرف مم فلان و از این عربا. یه حدیه که فقط چخص شاه میتونیسه بده و هیچ کسی دیگه نمیتونیسه بده فرمان پادشاهی سیاوشه برد از این مرز تا پیش دریای چی؟ یعنی یه سرده عنوان حدیه عروسی فرمان پادشاهی یه سرزمین بسیار وسیعی رو که میگه پناش صد فرسنگ بیشتر بود درازی صد فرسنگ بیشتر بود پناش رو مثلا قابل اندازگیری نبود حکم پادشاهی رو بر پرمیان نوشتن و با تا تخل صد بخونه سیاش عنوان چشم روشن بل منصور گفتم منصور فرمان پادشاهی مهر نکردن منصور یعنی چیزی که نشر میشه چیزی که پخش میشه فرمان است که پادشاه که صادر می‌کنه برای این بود که بیارن سر چهارراه بخونن یا نسخه بردارن بزنن مردم بخونن فرمان برای عمومی مردم بشه گفتن منصور یعنی چیزی که قرار است منتشر بشه پابلش بله بله و بعد پس بیا رو میدان سود هران کس که رفیزن از نزدیک می خالی میخانه خالیگران یافتیم می به وردیو هر چند باتافی به وردیو رفتی سه خانتی خوشبخت یک هفته میهمانی می ببینید که اون یاد ما همینو میگن گفتم یه بار در کسی هر کسی سی هر هر کس میخواست میآمد مهمون دعوت نذ هر کی میخواست میآمد هر چی هم جرس برستن هرچی می‌تونست می‌خورد بعد هم داگی‌باید می‌گرف بر می‌خور کنه در بست زندان‌ها برگشاد از او شادمان وقت او نیز شاد به هشتم بی آمد سیا بشتگاه عبا گردی، گردی، نزدیک شاد, شاد. گرفتند هر دو بر, بر او آفرین که این مهربان شخی ها رزنید در از سب ارمن و دلت منش پرگذشته به شرخ بلند بازان جاگه باز گشتن شاد بسی از جهاندار کردن یاد چونینید یک سال گردان سپر همی گشت بیدار برداد و نید مرازی کردیم این شد دو سال کنید یه سال جاوش اونجا بود که پیران حرف ساد و غف براش خواستگاری شد خواستگاری عروضی صورت گرفت یه سالم باز سیاهوشت پلو افراسیاف بود و یه سال بودن این بعد پرستاده آمد به نزدیک شاه به نزد سیاهوشی که نیت کاف که پرستد همین شاه را شخیاد همین گویده این محتر نام داد قوت من دل بگیرد قوت کتر من دل بگیرد و زیدر نشستد گوریزد گوریزد گوریزد همی بزیدن. بزیدن. عزیدر تو را دادم تا به چین یکی گرد برگرد و بنگرد یکی زمین به و... شهری که آرام را همه آرزو خوابی را به شادی بباش و به بمان به خوبی مفرداز آوش به یک زمان سیاوش به گفتار او گشت شاد بزد نال و خوس و گنه برنخواد سلیخ و سفاه و نگیل و خلاف با گنج با او براه فراوان اماری بیا, امالی. فراوان اماری بیا پس پرده خوبان به پیرافتند. فریگیس را در اماری نشان گنه نهاد و سفه را بران از اون باز نکده پیران بود گنه فرنهاد و سفه را بران به شادی برفتند سوی خوتن همه نامداران شدن دن جمعن. که سالار پیران از آن شهر بود که از بد گمانیش بیبخ بود از بدگمانیش می بخت بود همین بود یک ماه مهمان اوی بدن سو چنین بود تیمان او ز خوردن یک روز شاب گهی روز و میز گاه نقشه گاه سر ماه برخواست آقای سوز بدن گفت خیزت خروف شه خروف بی سوی پادشاهی خیش سپاه از سکت خشت و پیون به پیش بران مرز و بو مندر آگه بزرگان به راه شهنشف شدن به شادی دل از جای، بشادی دل به شادی دل به شادی دل،, دل از زهان را به آین بیارام شدن از آن پادشایی خلوشی بخواست تو گفتی زمین گشت با چرس راست پادشایی یعنی من بکتا از آن پادشایی چیز شمپنساش بیشه روی یوم کینگدم کینگدم آده شایی، این من ناله چنگ و تو گفتی به جنبت خمید دل به جای به جایی رسیدن کاباتی، یکی خوب فرکنده بنیادی؟ بسیار، اینجا روشنه دیگه، توضیح زیاد نداره میگه افراسی ها پیغون پرسته، یک کسی پرسته داره، اول, اول شما رو میپرسه شاهد این هم ادب بعد از احوال پرسی، میگه که آه، اینجا ما اینو که مملکت دادن و تو اینجا شاید اگه سامسونگ دروسی بکنید که دلیل خاصاً بگیره، خسته میشه از نمی می‌بینید ما این مملکت دادن به تو برو همه چیشو بگرد نگاه بکن هر چیشو که پسندیدی خوشت اومد برو برای خودت اونجا به شادی اونجا به آستانه که طبیعی است که آدم وقتی تو خونه یک کس دیگه است هر چغاتی باش مهمونی کنن تا یه وجودی آدم اون شخص دیگر. رحمان شب میام خونتون مهمون ها اگه خوابانا ور پاسان بولانشم میخواستم برم بیرون یا قیام ملاحظه شما رو میکنم سر صدا نکنم که ما تو دیدار شیم داخل آدمی دیگه رضایی که میزنیم جلو من ممکن هازار دوست ناشته بشن یا اشته ناشته بشن ولی منظورم بخورم خالص آدم گرفتاری dere ادم زن گرفته اونم اینکه دیگه رو من بهت گفتم برای خوش در حقیقت مرا ملخصش کرد که چیز نباشی تو اینجا ناراحت نباشی میخوای بمون اما میخوایم برو بعد راختون رفتن و در خوتن که مرکز پیران بود یک ماوندو سیاهوشو به مهمانداری کرد و حضیرایی کرد و عرض کنند با بعد راختون رفتن به یه جایی توی امون حال که میگی که بعد سیاهوش شخص ساعت چنده؟ بس دول بس دول به یک روی دریا، به یک روی راخ، به یک روی برد، برد، برد، برد، برد، نخشیرگاه درختان به آب روان، همیش رو دل سال بوده روان دیاغش به پیران سخون برگشاد، که این از برابون فردخنه هاست بسازم من ایدر یکی خوب راز تباشد به شادی مرا... رهنمان فرارم یکی شاشتان فراغ فراوان بدون اندر ایوان و کاف فراوان بدون اندر فراوان بدون اندر ایوان و کاف نشفتنگهی بر فرازم به ما چنان چون بود در خورت ها دو با به دو گفت بیرنگی خوب راز فراوان رو کندی, بران رو... بران رو کندی شاید به جا اینه هرچین نظرته بکن بخ تو فرمان من از این که خواست برارم یکی جای با ما را یکی اگه اجیزه میدین من اینجا بسید کنین شهر حساسم بله نخواهم که باشد من را بوم و گنج زمان و زمین از تو دارم سپنج سپنج یعنی آریه گفتم سه و پنج دیگه دنیا میگن سه رو میگن فراهای سپنج یعنی سه روز دارم تو شهر یا پنج سپنج از تو دارم یعنی آریه هرچه من دارم الان خود پنج سیاوش به دو گفت که بخت یاد درفت بزرگی تو عارض باید من گنج خودی همه زان تو به هر جای رنج تو بینم به خود یعنی ای... شما را زحمتیدم همش من صرف میکنید رفت کن یکی شهر سازم به این جای من که خیره سمانت در او انجامن از آن روم خورم تو گشته انباز سیاوش همی بود بادل به راز از اخترشناسان بکنید شاه که اگر سازنید دریدی جایگاه از اون فرل وقتم به سامان بود باگر کار بازن سازن بود باگر یمی یعنی و یا اگر برنی از... یا و بگفتن یک سال به شاه گذید که بس می فرخونده من یادی ما لازمی کنید جا فرخونده من. از افترشناسان براورد خشت دلش گشت پر درد و پر آب چشت انان تقاوت همی داشت همین ریخت از دیدگان آب به دو گفت پیران که ای شخ یاد چه بودت که گشتی چونید بود باش داد پاسخ که چرخ بلند دلم چرد پر درد و جانم نزند به هر چند گرد آورم خواسته همان گند و هم کاخ آراسته به فرق راسته؟ تفردام یک ضرب به دشمن رسد بدی بعد بوبت مرگ بعد فن که چون خان گیس کاندیس این اون جاوس که بعد چان کسی اوش میتزه شوندر بهشت کنند دا که چون خان گیس در جهان جایی نیست کنون شاوستان زن نشان جایی نی مرا نیکی دهش یابد خردمندی و بخت میداد بخت بخت به دنسان یکی شهارستان ساختم سرش رابطرین فرف راستم خنون اندرین هم به کار آورم و روبر فراون نگاه را برم چه خورم شود جای آراسته قدید آید از هر که میخواسته نباید من را شاد بودن بکی نشیند جای دیگر خیلی جای... خوب. این سیاوش گفتم که از اولیابزو میگن تو کرامت بشتو اینا اینکو که فرد بلش اصلاح که و اینا رو پیش کوین، من اینجا درست می‌کنن، قسط می‌سازن، این چیزو می‌کنن. من یک روز داشم، شافت و بعدی که ساختن، کسی نمیاد اینجا. نه من شادم در اینجا، نمی‌ذنم بعدش. باز. هزار شیشه. باز. فقط اون بخونید باقش رو برای اینکه هر کس سنی اینه، ما یه جلسه‌ام، دو جا، جلس. دو جا، چهار تا، سه جا، دو جا، دو جا، دو جا دو جا چهار تا سه جا دو دو جا دو جا دو جلسه میخویم علا تحتی دوره اون گرسید علی آه. خودتون سرکن بخون یه دقیقه این چیزایی بنده این جا شیفت برده